فریده هامت. سلام و ادب احترام خدمت دوستان عزیز همراهان. داستانهای شاهنامه فرید حامد هستم و با سومین قسمت از داستان زیبا و پندآموز و شکفتنگیز سیاوش از شاهنامه حکیم عبالقاسم فردوسی در خدمت شما هستم با ما همراه بشید در قسمت قبلی به اینجا رسیدیم که بعد از شکست لشکر افراسیاب و گرسیوز و عقب نشینیشون افراسیاب تصمیم میگیره که گرسیوز رو برای آشتی و صلح با هدایای بیکران و زیاد به نزد سیاوش بفرسته گرسیوز هم با هدایای افراسیاب راهی بلخ میشه و اونها رو با نامه افراسیاب به سیاوش میده و ضمناً مذاکراتی هم با رستم انجام میده چون میدونسته که سیاوش بدون مشورت و نظر رستم تصمیمی نمیگیره در نهایت اونها هم میگن که خب ما چند شرط برای خاتمه جنگ و پذیرش صلح داریم که بعد از رایزنی و مشورت با هم اونها رو با شما مطرح می‌کنیم ادامه داستان رو از جایی که گرسیوز برای دریافت پاسخ سیاوش و رستم به کاخ سیاوش میره با هم پی میگیری وقتی که گرسیوز به کاخ سیاوش میاد سیاوش و رستم بهش میگن که ببین ما نمیتونیم به حرف های افراسیاب اعتماد کنیم چون اون همیشه نشون داده که آدم غیرقابل قابل اعتمادیه و عهد شکنه برای همین برای قبول این آشتی و این صلح و آتش لازم چند تن از پهلوانان توران که از نزدیکان خود افراسیاب هم هستند به گروگان پیش ما بمونن و ما وقتی که مطمئن شدیم که شاه توران واقعا دست از کینه و جنگ و دشمنی برداشته اون گرگان ها را آزاد میکنیم خیالتونم راحت باشه که در این مدت رفتار و برخوردی در شعن پهلوانان طورانی باهاشون میشه نگران نباشید و بعدش هم رستم نام و نشون بعضی از کسان و نزدیکان افراسیاب رو میبره و به گرسیوز گوش زد میکنه که این افراد باید هرچه زودتر به رسم گروگان به ایران بیان و شرط بعدی که رستم برای گرسی از میذاره اینه که باید هرچهرا که از خاک ایران گرفتین به ما برگردونید گرسی از که اون شرایطو میشنوه پیکی به سمت پایتخت توران روانه میکنه و به اون پیک میگه پیام مهمی توی این نامه یا این نوشته هست و باید بیدرنگ اونو به افراسیاب برسونی پیک هم بلافاصله سوار اسب میشه و از رود جیهون عبور رو میکنه و بدون توقف خودش رو به دربار افراسیاب میرسونه. پی که از راه میرسه اونا نزد افراسیاب میبرن و اون هر چیزی رو که گرسیوز شنیده بود و برای اون در نامه نوشته بود به شاه بازگو میکنه. زمنن میگه که گرسیوز سفارش کرد که بگم رستم و سیاوش سخنان شاه توران رو باور ندارن. اونا از تو میترسن و برای پایان دادن به جنگ گروگان میخوان. اسم گروگان ها رو هم نوشتن تا به این وسیله مطمئن باشن که تو عهد شکنی نمی کنی. که خواستار صلح و آشتی شده بود شرایط رستم و سیاوش رو میپذیره و یکصد نفر از نزدیکانش رو مجددن با هدایه گرانبها نزد سیاوش و رستم میفرسته. همچنین فرمون میده که سپاهیای توران بدون درنگ شهرهای بخارا و سقد و سمرغند و چاچ رو تخلیه کنند و به توران بازگردند رستم که این رفتار دوستانه تورانیان رو میبینه و آگاه میشه که اونها اقب نشینی کردن به سراغ سیاوش میره و اقدامات افراسی و به اطلاع اون میرسونه با هم مشورت میکنن و اینکه چه چجوری این خبر رو به کاووس بدند و موافقت شاه رو برای صلح جلب کنند سیاوش نامه ای به کابوس می نویسه و در اون نامه بعد از هم دو ستایش رو نمیدونم از این هندونه زیر بغل پادشاه گذاشتن هایی که مرسوم بوده میگه به برخ که رسیدیم افراسیاب که گمان می کرد می به توران بتازیم برادرش رو با پیشکش گرانبها ها به نزد من فرستاد و پیشنهاد داشتی ما از اون خواستیم شهرهای ما را آزاد کنه و به ما پس بده و گروهی از پهلوانان و سران سپاهش رو که از نزدیکانش هستند نزد ما به گروگان بگذاره اون هم یک ست تن از نزدیکانش رو به عنوان گروگان برای ما فرستاد. رستم نامه رو بر می و خودش به سمت پای تخت میره چند روز بدون استراحت با رخش میتازه تا به کاخ کاووس میرسه خسته و گردالود وارد کاخ میشه و یک راست به تالار شاه میره. کاووس رستمو که میبینه با شادی و خنده از تخت زرین فرود میاد و اونو در آغوش میگیره. از حال سیاوش میپرسه و برای اینکه اونا تونسته بودن دشمن از خاک ایران بیرون کنن، اظهار شادمانی میکنه و از رستم هم قدردانی و سپاسگزاری. رستم شرح مفصلی در مورد چگونگی جنگ با تورانی ها و همچنین دلاوری های سیاوش به کیکاووس میده و بعد میگه پیامی از سیاوش دارم نامه رو به شاه میده و منتظر اکسالعمل کیکاووس میمونه منشی و دبیر دربار نامه رو میخونن. کاووس اون چرا که میشنوه نمیتونه باور کنه خشمگین میشه و به رستم پرخاش میکنه که حالا سیاوش نازموده و خام و جوانه تو که کوهنزالی و جنگ موده چرا تن به این سازش دادی؟ تو مگه رفتارای زشت افراسیاب رو فراموش کردی؟ اون شما رو فریب داده سر ترک که بینام و نشون به نزد شما فرستاده. بدون شک نیرنگی تو کار افراسیابه من از این جنگ بیزار نشدم و سازش نمی کنم. هنوز میتونم تونم افراسیاب و گوشمالی بدم رستم؟ همچنان خاموش میمونه و به حرفهای شاه گوش میده تحمل کرد و خشمگین نشد تا اینکه کاووس قدری آرامتر به سخنانش ادامه میده و میگه پیکی برای سیاوش میفرستم و فرمان میدم که اون پیشگشار و آتیش بزنه و دوباره جنگ رو شروع کنه اون باید گروگانهای افراسیاب رو نزد من بفرسته تا سر یکی یکیشون از تن جدا کنم رستم دیگه صبر و تحملش رو دست میده و با فریاد میگه به سخنان من گوش بده و تندی نکن به ما گفته بودی در جنگ شتاب نکنین و ما پذیرفتیم. افراسیاب پس از شکست تو جنگ بلخ دیگه به جنگ ما نیومد به جای جنگ و دشمنی پیشنهاد آشتی داد و دست دوستی به سوی ما دراز کرد و شهرهای ما رو پس داد و دور از جوان مردی بود که ما پیشنهاد صلح و آشتی اون را نپذیریم سیاوش با افراسی پیمان بسته تو با این کارت از اون میخوایی که پیمان شکنی کنه ولی سیاوش اهل این حرف ها نیست اون نمیتونه پیمان شکنی کنه قاووس باز عصبانی و در این حال متحجب نمیتونست بفهمه که رستم که همین شام آماده جنگ بوده و قبل از هر کسی پیش قدم جنگ چرا در از سلحه آش دیدم میزنه اون نمیتونست رفتار سیاوش و سازش پذیری رستم رو تحمل کنه و با سبانیت فریاد میزنه سیاوش که گناهی نداره گناه این آشتی گردن توه تو سیاوش رو وادار به همچین سازش و آشتی کردی سیاوش همیشه کینه افراسیاب و به دل داشته تو آتیش کینه رو در اون خاموش کردی رستم من دیگه به تو نیازی ندارم پهلوانی مانند تو سیاور منه و من اونو دارم و دیگه به تو نیاز ندارم. و همین الان هم به توس دستور میدم که برای جنگ با افراسیاب آماده بشه. رستم وقتی که این پاسخ از شاه میشنوه و عصبانی میشه و میگه خب باشه اگه توس هست پس دیگه روی رستم رو نخواهی دید. بعد از گفتن این حرف خشمگین و ناراحت و بیزار از کاخشاه بیرون میره و سوار رخش میشه و رو به زابلستان میگذاره وقتی که رستم میره کاووس قاصدی رو به نزد سیاوش میفرسته و به اون پیغام میده که سپاس بر خدای آرامش و جنگ تندرستی و خوشبختی از آن تو باد تو با دشمنی سازش کردی که بارها به کشور ما تاخته و دمار از روزگار ایران و ایرانیان برآورده. فرزندم فری به افراسیاب و نخور چرا که من اونو بهتر از تو میشناسم گروگانها رو به دربار من بفرست و اگر نمیتونی در برابر تورانی ها پایداری کنی سپاه ایران رو به توس بسپر و خودت به اینجا برگرد و آسوده زندگی کن وقتی که پیام به سیاوش میرسه و اون سخنان تند شاه رو میشنوه ناراحت و نگران میشه اون نمیدونست انگامی که افراسیاب به فهم یا پیمان شکنی کردن چه اکس و نشون میده بر سر دوراهی قرار گرفته بود و نمیتونست تصمیم بگیره با خودش میگه اگر گروگانها رو به دربار شاه بفرستم بیدرنگ ها رو میکشه و اگر پیمان شکنی کنم و به جنگ بپردازم رسوا میشم خدایا یا, یا من باش و من از این گرفتاری رها کن بعد از اون بلند میشه و شروع میکنه به قدم زدن و فکر کردن در دلش آشوبی بوده و بیقرار بوده دوباره با خودش فکر میکنه اگه سپاه رو به توس بسپارم و خودم به دربار برم اونجا همارا نخواهم داشت سودابه یه هی دست از سرم بر نمیداره درمونده شده بود نشستن و راه رفتن و فکر کردن فایده ای نداشت دستور داد بهرام و زنگه شاوران به نزدش بیان اونها بی اومدند و شاه بدون مقدمه مشکل خودش رو با اونها در میون گذاشت و گفت شاه از اینکه ما با افراسیاب آشتی کردیم کهش شده مگر ما شهر و ایران از اون پس نگرفتیم اونها اکنون صد گروگان پیش ما دارند و با ما آشتی کردند من چطور میتونم پیمان شکنی کنم پهلوانان به صحبت سیاوش گوش میدن و هنگامی که سیاوش از فرد ناراحتی و عصبانیت آروم میشه و ساکت میمونه اونا هیچ چی نمیگن تا خود سیاوش دوباره صحبت کردن رو شروع کنه سیاوش میگه ای زنگ نامدار تو رنج راه دشوار رو بر خودت هم کن گروگان های افراسیاب رو بردار و به دربار اون برو و به اون بگو که چی پیش آمده به اون بگو که آشتی سیاوش با تو خشم کاووس رو برانگیخته و ای بدون که هرگز پیمان شکنی نمیکنم و از هیچکس نمیترسم بیگمان خدا یار من خواهد بود از تو میخوام که به من پناهی بدی زیرا دیگه نمیتونم به ایران برگردم صبح روز بعد زنگه شاوران با صد سوار به همراه گروگانها به طرف پایتخت توران پار میشه افراسیاب از اون به گرمی استقبال میکنه و اون کنار خودش مینشونه و ازش پذیرایی میکنه. زنگه شاوران پیام سیاوش رو نکته به نکته به افراسیاب بازگو میکنه. افراسیاب از اونچه که میشنوه ناراحت میشه، نمیدونست چی باید بگه. سفارش میکنه تا از پیک سیاوش یعنی زنگه شاوران به خوبی پذیرایی کنن و سپس با پیران، وزیر و مشاور خردمندش به گفتگو می‌نشینه و پیام سیاوش رو برای پیران بازگو می‌کنه. از رفتار ناسنجیده و نابخردانه کیکاوس هم ایراد می‌گیره و اونو سخت نکوهش می‌کنه. خب دوستان بخش دیگه ای از داستان سیاوش رو شنیدیم این داستان ادامه داره و فراز و نشیب های زیادی داره و برای همینه که سیاوش یکی از محبوب ترین، پاک ترین و دوست داشتنی ترین چهره های اسطوره ای که نامش تا به امروز در بین قوام ایرانی زنده مونده در برنامه‌های آینده ادامه این داستان رو با هم پی می‌گیریم و مثل همیشه ازتون خواهش می‌کنم با پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون ما رو در بهتر شدن این مجموعه داستان‌های شاهنامه یاری کنید تا برنامه‌ای دیگر و درودی دیگر بدرو.